گروه جوان و فرهنگ به نام خدایی که مهر ورزیدن آموخت سلام و درود بر شما همراهان شبانه افسانه‌ها و قصه ها ما رو به دوران های باستان راهنمون می کنن. از طریق تحلیل دقیق افسانه ها و قصه ها که میتونیم بنديشه های گذشتگان و نسل های پیشین پی ببریم و با شناخت حیات اونها عمد عواملی رو که در گذشته دور زندگی افراد بشر رو شکل میداده بشناسیم و سیمای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوران های گذشته رو ترسیم کنیم و ما افسانه امشب ما افثانه رو براتون نقل میکنم به نام ملکی وجیه آباد از سرزمین مردمان ازبکستان برگرفته از کتاب افسانه‌های ترکستان به کوشش برزین آزرمیر و ناصر پور پیرار روزی روزگاری در سرزمین ازبکستان پادشاهی زندگی میکرد که خیلی ظالم بود این پادشاه دختری داشت به نام وجیه که در زیبایی همتا نداشت پادشاهان بسیاری از سرزمین های دور و نزدیک به خاستگاری وجیه میومدن ولی وجیه هیچ کدوم از اونا رو نمیپسندید مادر وجهه از خانواده فقیری بود به همین خاطر گاهی پادشاه اونو سرزنش میکرد و فقر خانوادهش رو به رخش میکشید که برو برو برو خدا رو شکر کن که زن من شدی وگرنه تا به حال از گرسنگی تلف شده بودی شنیدن این حرفها ها وجهه رو آزرده میکرد و از مادرش میخواست که هیچ وقت اونو شوهر نده و اگه قرار شد ازدواج کنه همسرش حتما مرد فقیری باشه و جیهه می اگه بخت یارم باشه اونو به جای پدرم به تخت میشونم روزی از روزها کلاقی روی شاخهی نشست و شروع کرد به قاروار کردن پادشاه که از صدای قارقار کلاق خست و عصبانی شده بود همه ی حکیمان رو احزار کرد و از اونا خواست که معنای قارقار کلاق رو برای اون بازگو کنند. حکیم گفت قربان قربان لابود دلش خوشه و برای خودش قارقار میکنه. کنه. پادشاه که شنیدن این حرف حکیم سخت عصبانی شده بود دستور داد حکیم بیچاره رو گردن بزنند. وقتی این خبر به گوش وجهه رسید فورا نزد پدر اومد و گفت پدرجان اگه دستورت رو در مورد گردن زدن اون حکیم بیچاره پس بگیری من من قارقار این کلاغ رو برای شما معنا میکنم پادشاه نگاهی به دخترش انداخت فکری کرد و گفت باشه دخترم باشه به شرط اینکه قول بدی معنای درست قارقار این کلاغ رو بگی وجهه گفت پدرجان این كلاقه که زن هم میتونه شوهرش رو ببره به عرش و هم میتونه بیاره به فرش پادشاه که انتظار نداشت دخترش در مقابل اون اسم شوهر رو بر زبون بیاره عصبانی شده گفت دختر یه بی شرم تا به حال هیچ دختری جرعت نکرده بی اجازه پدرش اسم شوهر رو به زبون بیاره اون وقت تو دختر یکی یدونه من این بیناهایت بیشرمیه الان دستور میدم هفت سال زندانید کنن تا درس ابراطی باشه برای دیگران وجیحه چیزی نگفت و گریه و های مادرش هم راه به جایی نورد که نورد و رو به زندان ننداختند یک هفته تمام پادشاه نقشه میکشید تا هر طوری شده دختر به قول خودش گستاخش رو سربنیست کنه وزیر که به نیت پادشاه پی برده بود فرند دستور داد صندوقی بسازن که به هیچ وجه آب درش نفوذ نکنه بعد دختر رو همراه با آزوغه چهل روز توی صندوق گذاشت و اونو دور از چشم پادشاه و نگهبانان زندان به آب رودخونه سپرد به این امید که بخت یارش باشه و نجات پیدا کنه صندوق حدود سه ماه روی آب شناور بود و دختر غذای هر وعده رو در چهار وعده میخورد در اون روزها پادشاه کشور همسایه دستور داده بود که همه مردم برای جمعآوری هیزم به سهراها رمونه بشن و هیزم جمع کنن در این میون پیرمرد مردی که از جمع و خسته هیزم خسش شده بود برای استراحت کنار رودخونه نشست که یه دفعه چشش به صندوقی افتاد که روی آب شناوره فوراً صندوق رو از آب گرفت و در اونو باز کرد دید بله دختری بسیار زیبا توی صندوقه پیرمرد مرد با خودش گفت شاید شاید این دختر دختر تاجریه که همراه پدرش سوار کشتی شده و کشتی اونا غرق شده و این دختر تو دست خودش نجات بده حالا حالا چیکار کنم انصاف نیست که این دختر بینوارو بذارم و برم بهتر صندوق رو با این دختر به بازار ببرم و بفروشم پیرمرد مرد در صندوق رو بست و کشون کشون به طرف شهر به راه افتاد دختر بارها به پیرمرد مرد گفت پدرجان اگه از صندوق بیرونم بیاری هرچی به بخوای بهت میدم خواهش میکنم من از صندوق بیرون بیار و اما گوش پیرمرد مرد به این حرفا بدکار نبود که نبود رفت و رفت تا به بازار رسید پیرمرد توی بازار شهر به این فکر بود که مشتری خوبی برای صندوق پیدا کنه که یکی از غلامان پادشاه از راه رسید و به پیرمرد گفت ای پیرمرد خرفت تو قرار بود بری و هیزم جمع کنی نه اینکه انبار مردم رو غارت کنی الان به پادشاه خبر میدم تا حقت رو کف دستت بذاره پیرمرد بیچاره حاج و واج مونده بود که چی بگه و در عرض چند دقیقه خبر به گوش پادشاه رسید و در نهایت به دستور پادشاه گردن پیر مرد بیگناه رو زدن و چند دقیقه بعد پادشاه شخصا در صندوق باز کرد. پادشاه تا چشش به دختر داخل صندوق افتاد هوش از سرش پرید و خواست که همون روز به ساعت عروسی رو راه پندسه اما دختر چهل روز محلت خواست و به پادشاه گفت قبل یالم سه ماهه که توی این صندوق عذاب کشیدم اگه اگه اجازه بدین مدتی استراحت کنم تا حالم بهتر بشه پادشاه مخالفت کرد و گفت اگه همین امروز با من ازدواج نکنی دستور میدم گردنت رو بزنن دختر به التماس گفت قربان حداقل سه روز به من مهلت بدین خواهش میکنم عاقبت پادشاه یه روز به دختر مهلت داد دختر همراه چهل کنیز وارد باغی شد در انتهای باغ رودخونهای بود دختر پاش رو گذاشت توی رودخونه در همین موقع ماهی بزرگی دن باز کرد و دختر رو پلید و توی آب فرو رفت کنیزا خبر رو به گوش پادشاه رسوندن پادشاه آهی کشید تاج و تخت رو رها کرد لباس ساده پوشید و سر به کوه و بیا گذشت. در شهر جورجان پسر چوکونی بود که کارش چروندن گاو و گسفند کنار روتونه بود روزی پسر تور انداخت و ماهی بزرگی رو صید کرد و اونو خونه نزد پدرش بود شکم ماهی رو که باز کردن دختری رو داخل اون دیدن که از لاغری روی پاش بند نبود دختر با بیرمقی گفت کمی به من غذا بدین من من خیلی گرستم پدر و پسر فوراً مقداری غذا به دختر دادند بعد نشستند به گفتگو و دختر تمام ماجرای زندگیش را برای پیرمرد و پسرش تعریف کرد پیرمرد گفت دخترم، دختره ما مردمان فقیر و بیچیزی هستیم آه در بسات نداریم من همه عمر چوبونه کردم دیگه توان کار کردن ندارم و خونه نشین شدم و حالا پسرم به جای من گلداری میکنه دختر گفت پدر منو به کنیزی خودتون قبول کنین من تمام کارهای خونه رو انجام میدم مرد خندید و گفت <تصفيق> چرا کنیز دخترم تو اگه بخوایی میتونی عروس این خوله باشی بسرم جوون نجیب و پرکاریه البته هرچند تو دختر پادشاهی و ما فقیر و توای دستیم و دختر كلام پیرمرد رو قطع کرد و گفت نه پدر چان این حرفو نزنین من با وجود اینکه دختر پادشاه هستم ولی همیشه هم میگفتم که اگر قرار باشه با کسی ازدواج کنم دلم میخواد اون شخص ثروتمند نباشه و حالا حالا اگه شما بخواین من بغد پسرتون درمیام. پیرمرد پیرمرد خندید و گفت <تصفيق> مبارکه دخترم مبارکه انشالله سالهای سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنید مبارکه خلاصه از فردای اون روز دختر کمر خدمت بست و شروع کرد به رفت و رو و تمیز کردن اساسی و شستن ظرفا و زندگی کردن مدتی با هم زندگی کردند و روز به روز شرایط زندگی براشون تنگ و تنگ تر میشد تا اینکه دختر طاقت نیاورد و یکی از هاش رو به پیرمرد داد تا به بازار ببره و هر چه خریدن اونو بفروشه پیرمرد گوشواره به دست به در کارون اومد و به انتظار مشتری نشست تاجری که از اونجا می‌گذشت گوشواره رو که دید جلو رفته گفت سلام پدرجان این گوشواره رو چند میفروشی پیرمرد گفت هرچه دلتون خواست بدین آقا تاجر یک پر از طلا از خورجین آورد و به پیرمرد داد و با احتیاط پرسید کافیه پدرجان پیرمرد گفت غیرش رو می‌بینی. البته که کافیه تاجر که پیر مرد رو ناتواندید یکی سیگه طلای دیگه هم اضافه کرد و قاطری رو به اون بخشید تا طلاها رو با اون حمل کنه تاجر که به قیمتی بودن گوشفار پی برده بود با خوشحالی زیر لب گفت اگه تا دیگه این گوشفار رو به دست بیارم پادشاه اون رو براور باج و خراج هفت اقلیم از من میخره اگه بتونم یه تای دیگه شده دست بیارم خلاصه پیرمرد به خونه اومد و ماجرا رو برای عروس و پسرش تعریف کرد هفته ی بعد دختر لنگی دیگه گوشوارش رو برای فروش به پیرمرد داد پیرمرد هم اونو برد و به همون تاجر قبلی فروخت این بار دو صندوق پر از طلا و یه دست قبا شمی و دو قاطر برای حمل اونا به به پیرمرد بخشید پیره مرد رو بار کرد و به خونه برد دختر اونا رو در جای امنی پنهون کرد و گفت حالا حالا میتونیم قلعهی بزرگ اینجا بسازیم ابتدا بیست ساز شروع به کار کردند و به زودی تعدادشون به دیویست نفر رسید اونا زن و فرزندانشون رو هم با خودشون آوردن و دختر به همی اونا پول و غذا و لباس داد در ظرف پونزده روز صد خونبار دیگه هم به جمونا اضافه شد سه ماهه قلعه بزرگ بنا کردند که دوازده دروازه داشت و بالای هر دروازه تصویری از دختر آویزون کردند و لوحی زیر اون بود که روی اون نوشته شده بود نام این آبادی وجیه آباده هرکس که به اینجا بیاد کار و زندگی براش ترمینه در همون سال هفتاد و پنج هزار خونوار در اونجا ساکن شدن برای همه کار بود و ادهی برای دفاع از شهر مسلح شدن برای هر دروازه 25 و پنج نگهبان تعیین شد دختر یا همون وجیهه به همه اونها دستور داد هر وقت کسی رو دیدید که به تصویر بالای دروازه خیره شده فورا اونو نزد من بیاری کم کم شهرت شهر وجیه آباد در هوجا پیچید و تا به گوش پادشاه هم رسید پادشاه جورجان که سخت عصبانی شده بود گفت آه چه کسی جرأت کرده در ملک من چنین شاهی برپا کنه ها باید این شهر رو ویران کنم و تمام مردمانش رو از دم تیغ بکذرم و برای اینکه از این ماجرا سر در بیاره لباس مبدل پوشید و به طرف وجیه آباد براه افتاد پادشاه جورجان به در یکی از دروازه های وجیه آباد که رسید از نگهبانی پرسید این شرح به دستور چه کسی بنا شده نگهبان نگهبان گفت به دستور کسی که تصویرش رو بالای دروازه میبینی اون برای ما بسیار ارزشمنده اون برای ما زحمات زیادی کشیده به ما خونه و غذا و امنیت داده پادشاه نگاهی به تصویر انداخت و زیر لب گفت چه زن زیبایی! شاید بتونم از اون خاستگاری کنم و بعد به نگهبانان گفت که قصد داره با وجیه گفتگویی انجام بده نگهبانها پس از اجازه از وجیه پادشاه رو به داخل قلعه هدایت کردند وجیه از پادشاه پرسید برای چه کاری به اینجا اومدین پادشاه بتوندی گفت اومدم تو رو به عقد خودم در بیارم بانو وجیه که انتظار شنیدن چنین حرفی رو نداشت با عصبانیت گفت «مردکه گستاخ من زنی متأهلم مگه خبر نداری فوراً برای این گستاخی پوزش بخواه، پادشاه که تصور میکرد وجیه ازدواج نکرده نومید شد و از شدت عصبانیت شمشیرش رو کشید تا وجیه رو بکشه، در این موقع غلامان بر سر پادشاه ریختن و اونو دستگیر کردن مردم از شنیدن این خبر به کوچه ها ریختند و شادی کردند و وجیه رو به تخت پادشاهی شهر جورجان نشوندند. مدتی گذشت تا اینکه روزی مردی با لباس ساده جلوی دروازه اومد و با دیدن تصویر وجهه بالای دروازه زد زیر گریه نگه ها اونو به نزد وجهه بردن وجهه با دیدن مرد پی برد که این مرد همون پادشاه سنگدلیه که برای فرار از دستش به کام ماهی پناه برده بود فورا دستور داد مرد رو دستگیر کنن و به زندان منزند بعد دستور داد ارتشی هفت هزار نفری آماده کنن و خودش در حالی که شوهرش هم در رکاب اون بود چهل روز از دشت و صحرا از کوه و دریا گذشتن تا به سرزمین پدرش رسیدن اما بشنوید از پدر وجیه یکی از شبها پدر وجیه در خواب دید که اقابی از آسمون فرود اومد اون از جا بلند کرد و با خودش با آسمون برد و در بین آسمون زمین بهش گفت اگه طلب بخشش نکنی سر از تند جدا میکنم پادشاه یا همون پدر وجیه با التماس گفت منو نکش خواهش میکنم من, من هرچی دارم تو همه رو به تو میبخشم بغاب گفت من نیازی به مال تو ندارم اومدم که انتقام خون وجیه رو از تو بگیرم پادشاه با شنیدن نام دخترش شروع کرد به گریه و, و آجزانه خواست که اونو ببخشه در این موقع وجهه در حالی که در یه دست شمشیر و در دست دیگه مرغی بریان داشت از پشت کوه بیرون اومد با یه ضربه اقاب رو به دو نیمه کرد پادشاه رو سالم به زمین رسوند و مرغ بریان شده رو در مقابل اون گذاشت پادشاه خی سهرخ از خواب پرید حکیمان و مشاوران رو خواست تا خوابش رو تعبیر کنن هر کدوم چیزی گفتن تا اینکه نوبت به وزیر یعنی همون کسی که وجیحه رو توی صندوق گذاشته بود تا نجات پیدا کنه رسید وزیر گفت قربان به نظر من تعبیر خواب شما اینه که به زودی دشمن به سرزمین ما حمله میکنه و پیروز میشه اما در این حین وجیحه سر میرسه و دشمن رو نابود میکنه و کسی دیگه ای رو به جای شما بر تخت پادشاهی مینشونه پادشاه که از این تعبیر سخت عصبانی شده بود با خشم به وزیر گفت ای دروغو تا به حال استخونهای وجیه توی زندان پوسیده شدن این دروغ شاخدار رو کدوم آدم احمقی باور میکنه وزیر ها؟ و بعد دستور داد وزیر رو به زندان مندازه از اون روز به بعد پادشاه دوچار کابوس شد. از ترس می لرزید. شبها مثل گراز تیر خورده به خودش می و خواهش نمی برد. بعد از یک هفته پیکی از راه رسید و پیغامی رو که به نام پادشاه جورجان بود به اون پادشاه در فکر این بود که آقابت کار میشه. ساعتها فکر کرد و سرانجام به نام سراح دید مشاوران و نزدیکان وزیر رو از زندان آزاد کرد و مشکل مملکت رو با اون درمیان گذاشت وزیر که از رفتار پادشاه سخت آزرده بود شاه رو به خاطر رفتارش سرزنش کرد ولی چون اونو در مونده دی تصمیم گرفت بهش کمک کنه وزیر با هدایای بسیار به طرف لشکر دشمن براف در نزدیکی اردوگاه اونها توقف کرد و از اونجا پیامی به خط و امزای خودش به عنوان پادشاه جور جان فرستاد با این مضمون که هر بلایی میخواهید به سر من بیاورید ولی کاری نکنید خون مردم بیگناه ریخته شود نامه به دست وجهی که رسید اونو خوند و دست خط وزیر رو شناخت فورا اونو احزار کرد و به گرمی اونو پذیرفت وزیر نیز فورا وجهه رو شناخت و گفت دخترم همیشه در این فکر بودم که تو زنده یا نه حالا که میبینم زنده خیلی خیلی خوشحالم تو برای من مثل دختر نداشتم بودی وجیه گفت من اومدم تا مملکت رو از شر پادشاهی پدرم نجات بدم وزیر وزیر گفت چه سعادتی اقبال به این مملکت روی آورده چه از این بهتر وجیه با لشکریانش به شهر وارد شدند مردم شهر که از دست شاه ظالم به تنگ اومده بودن دروازه شهر رو به روی ملکی وجیه آباد باز کردند. و بعد از جستجوی بسیار پادشاه رو توی تویله قصر دیدند. همسر وجیه شمشیر کشید تا سرستن پادشاه جدا کنه شاه به التماس و زاری افتاد دل وجیه برای پدرش به رحم اومد و از خونش گذاشت نجیه امور رو به دست مردم خوشنام داد و شوهرش رو که چوپان‌زادی نیک سرشت بود به تخت پدر نشوند افسانه ملکی وجیه آباد رو از مردمان سرزمین ازبکستان براتون نقل کردم. برگرفته از کتاب افسانه‌های ترکستان به کوشش برزین آزرمر و ناصر پور پیار. هایی که ما در برنامه هزار افسان براتون نقل می‌کنیم تنها بخشی از افسانه‌های ملل مختلفه. و چه بسا افسانه‌هایی که در میان مردم به صورت شفاهی مونده و هنوز توی کتاب‌ها گنجنده نشدن و منتظر کسانی که با قلم و کاغذ به سراغشون برن و نظرن این گنجینه ارزشمند معنوی به دست فراموشی سپرده بشه. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار افسانه قربانزاده اجرا مهران دوستی صدابرگار اکبر نیکاین تای کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود